مواقع تقدیم المبتدا على الخبر جایگاه جایگاهایی که مبتدا قبل از خبر وجوهان آمده باشد، مبتدا وجوهان قبل است آمده باشد، قبل از خبر آمده باشد که این هم در چار جایگاه است. الامثله من فاتح مصر من العربي یکی از جاهایی که یکی از جاهایی که مبتدا الان بحث چه هست باید چون ما قبلا خوندیم که بعضی جاها خبر میتواند قبل از چه بیاید قبل از مبتدا ولی بعضی جاها واجب است که مبتدا اول آمده باشد و خبر بعدش اونا چه جاهایی هستن؟ گروه امثله اول رو دقت بفرمایید زمانی که مبتدا از اون الفاظی باشد که حق ابتدای کلام رو دارد حق چی رو دارد؟ مانند اسمای استفهام شرط مای تعجبیه کم خبریه زمیر و الى آخر اینجا دقتی بفرمایید در گروه امثل اول من فاتح مصر من العربی کیست فاتح مصر از عرب ها از عرب ها فاتح مصر چی کسی هست خب من مبتدا هست دیگه نمیشه جایش رو با خبر تغییر داد یعنی شما اول بیایید خبر رو بیاورید و بعدش چی رو پس من مبتدا فاتح خبرش هست من یشاهد شاهد الاثار من یشاهد شاهد الاثار یدهش این هم من چون شرطیه هست حقش این است که کجا بیاید اول کلام اون من اولی من استفهام بود این من از اسمای استفهام این من چه هست معنا شرط هست من یوشاهد الاثار یدهش هر کس آثار رو مشاهده کند دحشت زده می شود فاتحه. فاتحه چطور فاتحه عربی چطور فاتحه مبتدا فاتحه خبر مصر مضاف الیه من العربی جار و من یو شاهد الاثاریت هش <تصفيق> من مبتدا خبر ما اینجا جمله هست ما اعظم الحرم این ما مای تعجبیه هست بله بله مضافه ولی مضاف نقش نیست مضاف میتونه فائل باشه میتونه خبر باشه هر چیز دیگه میتونه باشه متعجب شدی؟ این چیه دیگر مصره مضافه گفتن دلت که مضافه مضاف هست من میگویم مبتدا فاتحو ببینید فاتحو نقشش خبره ولی مضاف هست به مصر مثل مضاف الیه میشه ولی اگر شما رو گفتن کلمه رو اعراب کنید شما بیاید بگید این مضاف هست این مورد قبول نیست مضاف هست ولی مضاف اعراب نیست نقش نیست مضاف فقط عامله فقط کلمه بعدی رو مجرور میکنه ولی خودش نقشای مخ... مخ... متفاوتی داره بر حسب عامل نقش داره مثلا شما اینجا دقت کنید اینجا خبر هست مضاف ما ولی در این مثال دقت کنید جا غلام عمر اینجا جاست فائل هست اینجا مضاف ما نقشش چی هست فاعل هست پس بریم جلوتر ما اعظم الحرما ما اعدل القاضیه که خوندیم دیروز این مای تعجبیه هم نمیشه جایگاهش رو عوض کرد مثلا ما نمیتونیم بگوییم الهرم ما اعظمه الهرم ما اعظمه یعنی ما, ما بیاییم اول اعظمه رو که خبر هست قبل از چی بیاوریم قبل از مای که مبتدا هست پس در مای تعجبیه هم نمیشه خبر رو قبل از آن آورد مثال بعدی کم خبریه کم اینجا مبتدا هست در این مثال هی الدنیا توعتی و تمنع اینجا هم در این مثال این هیه زمیر شعن هست زمیر چه هست زمیر شعن هست اد دنیا مبتدا هست هیه هیه مبتدا هست چون زمیر شعن هست نمیشه جایگاهش رو با خبر چیکار کرد عوض کرد لمصرو لمسرو لی اگر میبود که فرق میکرد لمسرو رو و نیلی اینجا هم زمانی که مبتدا همراه با لام ابتدا باشد زمانی که مبتدا همراه به چه باشد با لام ابتدا در این حالت هم مبتدا باید در ابتدا بیاید قبل از خبر آمده باشد و آخرین جایی که در امثله گروه اول یا آخرین لفظی که باید در صدر کلام بیاید اسم موصولی هست که خبرش فا داشته باشد خبرش چه داشته باشد؟ الَّذِي يُجیبو الَّذِي مبتدا هست الَّذِي چه هست؟ مبتدا هست محلن مرفو فله المكافاهتو له المكافاهتو که خبر هست چون خبرش مخترن به فاء هست اینجا هم یکی از جاهایی است که الذي باید در صدر کلام بیاد الذي باید اینجا در چه بیاید؟ اسم موصول در این مثل امثله باید در صدر کلام بیاد چون خبرش همراه با فاه هست اما برویم روی امثله گروه دوم انما الحديد صلب بود انما الحديد صلب زمانی که مبتدا مقصور بر چه باشد بله بر خبر باشد ما انت الا شاعر اینجا اگر دقتی بفرمایید نیستی تو مگر چی؟ شاعر تو رو مقصور فقط بر چی کرده است؟ بر شاعر بودن بر چی؟ شاعر بودن یعنی تو رو فقیه نمی داند عالم نیستی فقط جهسی شاعر پس دومین جایی که اولین جا زمانی بود که مبتدا از اون الفاظی می بود که حق صدارت کلام رو داشتند. دومین جایی که مبتدا باید قبل از خبر بیاید زمانی است که مبتدا مکسور بر چی باشد بر خبر باشد و سومین جایی که مبتدا باید در ابتدا بیاید چه زمانی است زمانی است که خبر جمله فعلیه‌ای باشد خبر چی باشد و در اون خبر زمیری باشد که به مبتدا بر حالا اگر در همین مثال ما بیاییم زهر و جایش رو عوض کنیم یبتسم زهر اون موقع که زهر مبتدا نیست یک دو آره پس زمانی که در خبر در خبر زمیری باشد که اون ز... زمیر به چه برگردد؟ به مبتدا برگردد در این حالت ما نمی توانیم مبتدا رو بعد از خبر بیاریم یا خبر رو قبل از مبتدا و چهارمین جایی که واجب هست خبر خبر در آخر بیاید و مبتدا قبلش زمانی است؟ زبانیست که هم مبتدا و خبر چی باشند یا معرفه باشند یا چی باشند نکره باشند علی یون صدیقی علی دوست من است علی یون صدیق علی که مبتده است معرفه است صدیق هم چه است معرفه است مضافه به زمیر است اینجا ما نمیتونیم بگیم صدیقی علیان و بعدش بگویم علیان مبتدا هست نه زمانی که دو معرفه بودن اولی رو باید مبتدا قرار دهیم دومی رو چی؟ دومی رو خبر اولی رو باید چه قرار دهیم؟ ما میتونیم بگویم صدیقی علی لازم معناوی مشکلی نیست ولی اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم که صدیق و علی چه مبتدا در این نوعه امثله که مبتدا و خبر هر دوتا معرفه بودن اونی که در ابتدا و هست چه هست باید مبتدا باشه چون که هم معرفه آره در هدایه همچنین گفی زده است من هم خوندمش ولی ما اصل رعایت میکنیم اصل بر این است که ابتدا چی اومده باشد مبتدا اومده باشد زمانی که هر دوتا صلاحیت رو داشته باشند اصل بر این است که اولین چی باشد اولی مبتدا باشد من که سند اکثرو من که تجربتن خب زمانی که دقت بفرمایید یا زمانی که هم مبتدا و هم خبر نکره باشند هم مبتدا و هم خبر چی باشند؟ نکره باشند کسی از شما هست این جمله را ترکیب بفرماید؟ اکبرو منک که سنن اکثرو این جمله ترکیبش چونین هست اکبرو مبتدا منک جار و مجرور سنن تمیز هست اکثرو خبر هست منک که مثل قبلش است. خب اینجا ما ببینیم اکبرو با اکثرو جفتشون نکره اند و نکره دقت بفرمایید ما گفتیم نکره با تخصیص بشه تا چه بشه, بشه. قبلا گفتیم اینجا اکبر با اکثر در تخصیص با هم مساویاند اگر یکی خاصتر می بود خب بابتداشت می کردیم و چی می شد؟ اون یکی دیگر خبر می شد می تونستیم جاشون رو تغییر بدیم راحت تشخیص می دوش اونی اون یکی اون مبتدایه چون ما دیگه خواستره نزدیک به معرفه هست نزدیک به چه ولی اینجا نه اینجا هر دوتا در تخصیص با هم چی هست لذا در این نوع مثال ها اولی رو مبتدا قرار میدیم و دومین نکرار رو چه قرار میدید؟ خبر قرارش میدید حالا بیایید در القائد القاعده قعدده پ و پ یه تقدیم المبتدا في ابع موااضه وواجب است تقدیم مبتدا در چرجه اذاکان المبتدا و من الفااضل التي لحظ صداره زمانی که مبتدا ازون اون باشه که حق صداات رو دارن وی الاستفهام و وها اسماء استعفام هستند و شرط با مای تجببیه و کم خبریه وذیرشان و مبتدای که مختن، به لام ابتدا باشد و الموصول اللذی اقترن خبره بلفا و مصولی که خبرش مخترنه بفا است. با اذا کان المبتده او مقصورن خبر زمانی که مبتدا مقصوره بر خبر باشد مانند ما انت الا شاعر که اینجا مبتدا مقصوره بر چه هست بر شاعر بودن هست بر خبر هست تو نیست دی مگر شاعر آره مقصوره بر شاعرش کرده تو نیستی مگر شاعر جیم اذا کان الخبر اذا کان خبر المبتده جملة فعلیت فاعلها ضمیرون مستتر یعودو علی المبتده زمانی که خبر زمانی که خبر مبتدا جمله فعلیه باشد که این جمله فعلیه فائلش زمیر مستطری باشد که بر مبتدا بر بگردن. مانند زیدون یزریبو مانند زیدون یزریبو دال اذا کان المبتدا و الخبر معرفتین او زمانی که مبتدا و خبر جفتشون چی باشند؟ معرفه. معرفه باشند یا هر دوتاشون نکره باشند که در تخصیص اون دوتا نکره با هم چی باشند؟ برابر, برابر, باشند. برابر باشند پس این بود از درس بله واجبه که اولی مبتدا باشه دومون میخبر چطور؟ اگر گفتیم صدیقی علیان بر اساس این قاعده که امروز خوندیم میگیم کتاب هدایه که گفته بود میشه این رو مبتدا قرار داد یا اولو فرقی نمی کنیم موقعی که مثلا الله نبینا رو مثال آورده در محمد میگم چه مگم؟ محمد نبینا نبي یا نبینا محمد بله الله, الله ربنا در این امسله هدایه گفته بود نیشه هر کدوم از این رو مبتدا قرار داد ولی این کتاب میگه نه باید اولی مبتدا باشه بله نه مشکلی در اومدن نیست مشکلی در اومدن نیست مشکل میگه در بحث این در ترکیب اللازم مفهومی که فرقی نمیآید. الله میگی مبتدار ربنا خبر و اونا که همینجوری میگن میگن خب الله رو خبر حساب کن رب رو مبتدا بر اساس اون چه که هدایه گفته خب اگر واجبی باشد بر اساس این قاعده اون موقع ما میگیم الله مبتدار ربنا خبرش تامم شد رفتن آه؟ آره بعضی از نظریات و بستگی داره که نظر کوفی ها رو مثلا ترجیح بده یا نظر نمیدونم بستگی ها رو ولی در اللحاظ اعرابی فرقی نبیاد اللحاظ اعرابی فرقی نه خب اما درس بعدی؟